سوره مبارکه هومزه را میخانیم بعد از این که موضوع تزهید من دنیا یعنی از دنیا کرار بکش و مسیر جهاد را بگیر مسیر ایمان را بگیر مسیر صبر و استقامت را هرچی مشکل میشه باشد اما در سوره هومزه همون موضوع تزهید من دنیا ادامش هست و در این برای کسانی که مال زیاد اندخته میکنند و این مال سبب افتخار و غرورشون است ببین این نکته همیشه باشه نفس مال ایرادی ندارد به شرطی که انسان را از خدا دور نکند اون مال دنیا هست و اون مال مار میشه که در انسان افتخار و غروری جاد کند انسان را از خدا غافل کند دنیا هم همون است که انسان را از خدا غافل بکند لذا الله می فرماید وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ هلاکت برای هر انسانی طعنه زننده عیب جو همزه یعنی مردم را طعنه میزنه ببین کسی که زیاد پول داشته باشه همین خصلتا رو داره مردم را طعنه میزنه مسخره میکنه توی این و اون عیب پیدا میکنه ویلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ حلاکت تباهی برای هر اون انسانی که ثانمی زند و مردم عیب و ایراد میگیرد اللذی جمع مال و عددا اون انسانی که مال جمع کرده مال اندوخته کرده و همیش از بس که خوشحال است و عدده همیش میشماره بار بار حساب میکنه بار بار مالش را بالاخره با ماشین حساب جمع میکنه و اینقدر خوشحال است و اینقدر به این مال دل بسته که احسابو آن نمال او اخلاق می پندارد فکر می کند که مال او اخلاق همیشه او را نگاه می دارد یعنی همیشه با اون مال او خاطمانه به دلیل این هماکو استقراق در مال فکر می کرده همیشه است کلا هرگز سینی نیست. نه اینکه همیشه مال اتنا میمانت خودت هم انداخته میشه در جای بدی لیمبذن فالحطما حتما حتما انداخته میشه این انسان در حطما انداخته میشه تخویف اخروی است و ما ادراک مل حطما خبر داری حطمه چی است الله حطمره توضیح داده نار الله المقدا آتش الهی هست اون آتشی که روشن شده، اون آتش، آلتی تطلع علی الافیدا روشن شده به امر الله و اون آتشی هست که تطلع، اثر میکنه بر دل انسان. یعنی چنان میسوزاند انسان را که دل به درد میآید، دل متوجه میشی گاهی کسی زخمی کوچی که بر میداره زیاد احساس نمیکنه همون جای بدن گویا کمی میخارد. کمی بد همونجا دردش میاد اما وقتی که درد شدید باشه میگه دلم درد گرفت از بس که این درد اثر گذاشت لذا این کنایه از درد شدیده الله میفرماید چنان شدیدان او را متاثر میکند که التیه تتطلع على الافئده دل را متوجه میکند انها علیهم مقصدا این آتش بر آنها بند هست فی عمد ممدد در ستون طولانی به چه یعنی اینطور حساب کن که یک ستونی هست از آتش به اندازه قد انسان به اندازه قد انسان همین قد قد کشیده کلن اطرافش چهار طرفش آتش هست گویا آتش محصور در این انسان هر جمیر همین آتش باش. آتش مثل لباسی که لباس به تن ما هست هر جمیریم لباس با ما همراه هست می هم لباس همراه است می هم لباس هست. اونجا آتش لباسش شده و آتش مثل یک ستونی بر او محصور شده الله نجات بده خب این تخویف اخروی بود برای کسانی که مغرورند برمال افتخار و غرور می کنند.